داستان جزیره نوعروس وقت سحر شده بود اما هنوز هوا خیلی تاریک بود. زن جوونی از جادی پرشی به کوهستانی بالا می رفت. چندین بار روی سنگ ها افتاد اما تلاش می کرد به بالای کوه برسه به زیارتگاه خدای کوهستان در زیارتگاه چندین بار به احترام زانو زد و به درگاه خدا دعا کرد خدای مهربون کمک کن کمک کن بیماری شوهرم درمون بشه خواهش میکنم خواهش میکنم کمک کن شوهرم از این بیماری نجات پیدا کنه وقتی او دعا میکرد، هوا کاملا روشن شد. از دودکش های چند خونه روستایی، در دامنه کوهی که اون بالاش ایستاده بود، دودی شبیه مه بیرون میومد. پشت دهکده دریایی بود. دور از ساحل هفت جزیره کوچیک و بزرگ وجود داشت که به هم پیوسته به نظر می رسیدن. مثل اینکه که بازوهاشون رو و هاشون گذاشته بودند. به همین خاطر این جزیره ها رو کوه های هفتگانه اسمشو گذاشتند زن جوون به دریای روبروی جزایر کوههای های هفتگانه نگاه کرد و آهی کشید. شوهرش از یک ماه پیش مریض بود. اوایل بیماریش اینقدر سخت نبود، اما به مرور حالش بدتر شد. زن جوان سعی میکرد تمام داروهای شفابخش رو برای بیماری شوهرش تهیه کنه. وقتی میشنید دارویی برای این بیماری وجود داره برای به دست آوردنش از هیچ کاری حتی فروش وسایل خونه و هدیه های عروسیشون هم خودداری نمیکرد. اما حال شوهرش اصلا بهتر نمیشد. با این حال او هرگز در پرستاری از شوهر مریضش دل سرد نمیشد. و هر صبح هنگام طلو خورشید به درگاه خدای کوهستان خالصانه دعا میکرد وقتی دودکش خونههای روستایی رو که نشونه تهیه صبحونه بود دید با عجله از کوه پایین اومد میباست برای شوهرش آش برنج تهیه کنه وقتی به در کلبه ویرون خود رسید، صدای ناله شوهر بیمارش رو شنید. با شنیدن صدای ناله شوهرش قلبش شکست. چقدر شوهرش قبل از بیماری نسبت به او دلسوز و با محبت بود. با تلخی تمام گریه می کرد و به در چوبی کلبه آفتاب خورده خود تکیه داد. اگه میدونست در جایی داروی شفابخشی برای شوهرش وجود داره هر چقدر هم رفتن به اونجا مشکل بود میرفت و اونو به دست میآورد لبش رو گاز گرفت و تصمیم گرفت هر طور هست بیماری شوهرش رو درمون کنه همین وقت قدیمیترین و ماهرترین پیشگوی دهکده از کنار خونش داشت عبور می کرد. وقتی پیشگو گریه اونو دید سعی کرد با زن جوون همدردی کنه و اونو آرومش کنه و اینطور شروع کرد. آه! متاسفم که هنوز چیزی از ازدواج شما نگذشته باید شاهد مرگ همسرت باشی. اما خواهش می کنم شهامت داشته باش. ندای ایمان تو به آسمون میرسه. بیماری شوهرت خوب میشه. پیر زن پیشگو میخواست بیشتر از این حرف بزنه اما جلوی خودشو گرفت و تصمیم گرفت چیزی نگه. وقتی زن جوان همدردی پیشگو رو دید با حیجان از او پرسید آیا برای بیماری شوهرش؟ درمون مؤثری رو هم سراخ داره و پرسید مادر بزرگ عزیز آیا دارویی برای درمون شوهرم میشناسی؟ اگه وضع شوهرم به همین ترتیب پیش بره به زودی میمیره اگه درمونی هم براش سوراخ داری خواهش میکنم به من بگو من حاضرم به خاطر او هر کاری بکنم چشمهاش پر از عشق بود ولی نور امیدی در چشمهاش سوزو سو میزد. حتی حاضر بود بمیره تا بتونه همسر داشتنیش رو نجات بده. شوهرش بیش از زندگی خودش برای خودش ارزش داشت. اما پیشگو گفت درسته که من خیلی پیرم اما دانش زیادی ندارم اون در حالی که کلمه درسته درسته رو با خودش تکرار میکرد چشمهاش رو به آرومی بست زن جوون که مشتاق صحبت معجزاسای پیشگو بود به صورت پیرزن خیره شد و گفت خواهش میکنم بگو برای شوهرم چیکار کنم؟ من برای خوب شدن او حتی حاضرم جونم را فدا کنم مادر خواهش میکنم بگو برای سلامتی شوهرم چیکار کنم؟ خواهش میکنم کنم فورم بگو بگو حاضرم من. به خاطر او هر کاری بکنم. اما پیرزن با سرسختی تمام حرف نزد و صحبتی رو به میون نیاورد بعد از مدتی و با یه مکس طولانی گفت: بله، تنها یه را! اونم یه راه برای معالجه شوهرت وجود داره اما این راه خیلی دوره تازه این کار برای یه زن خیلی خطر داره اگه من راز این راه رو برات باز کنم و بیان کنم که چطور بری خدا منو مجازات میکنه پیشگو نمیخواست بیشتر از این صحبت کنه با اینکه پیر زن گفته بود انجام دادن این کار برای یه زن بسیار خطر داره زن گفت که میتونه اون را انجام بده زن دست پیرزن رو چسبید و به او التماس کرد به همسرش کمک کنه پیشگو گفت نباید بگم گفتم من نباید نه نباید اما پیشگو نتونست در برابر التماس زن جوون مقاومت کنه و گفت تو دریای آزاد رو میشناسی منظورم دریایی که روبروی جزایر کوه‌های هفتگانه قرار داره اگه به کوچکترین کوه از کوه‌های هفتگانه بری یه گیاه دارویی ناشناخته اسرارآمیزی می‌بینی میگن این گیاه شگفت انگیز حتی حتا می‌تونه مرده رو زنده کنه زن جوون با شنیدن این حرف از جا پرید او تکرار کرد جزایر کوههای هفتگانه جزایر کوههای هفتگانه جزایر کوههای هفتگانه کوچکترین کو در میان کوههای هفتگانه وای خدای من من داروی همسرم رو پیدا میکنم و براش میارم یعنی اگر بتونم اون گیاه دارویی رو به دست بیارم بیماری شوهرم رو درمان میکنم پیشگو گفت البته اون دارو میتونه زندگی شوهرت رو نجات بده اما باید بدونی که اون جزیره خیلی عجیبه جزیره ترسناکیه که هیچکس نتونست از اونجا سالم برگرده تازه زنها هم اجازه ندارن حتی به جزیره نزدیک بشن زن جوان گفت بله من به اونجا میرم و دارو رو به دست میارم. زن پیشگو با صدای نسبتاً آرومی با خودش گفت: «اوه خدای من حرف بدی زدم. نباید در این بار چیزی میگفتم و بعد رو به زن جوان کرد گفت بازم به تو هشتار میدم بهتره به اونجا نری. صدای پیشگو نشون میداد که از گفته خودش پشیمون شده اما زن جوون با خوشحالی تمام از پیر زن پیشگو خیلی تشکر کرد و به خونه برگشت با عجله صبحونه رو حاضر کرد و به شوهر بیمارش گفت عزیزم باید خیلی گرسنه باشی. خواهش میکنم این آش رو بخور. نهارت رو هم رو میز میذارم. اگه گرسنه بودی، ظهر اونا بخور. ممکنه یکم دیر به خونه برگردم. شوهرش گفت خب کجا میری؟ برای کاری به دهکده میری؟ این گفتگو مثل همیشه لبریز از عشق بود و زن جوون گفت نه عزیزم برای چیدن گیاهی دارویی میرم شنیدم گیاه دارویی خدروی معجزگری بالای کوه هستش زن جوون جرأت نکرد به شوهرش بگه که به جزایر کوه هفتگانه در دریا میره نمیخواست شوهرش رو نگرون کنه. تازه فکر میکرد که اگه قایق ماهیگیری شوهرش رو برداره میتونه یه روزه به جزیره بره و برگرده. شوهرش گفت عزیزم لازم نیست اونجا بری. من دیگه امیدی به زنده موندن خودم ندارم. وقتی تو تلف نکن. خواهش می کنم خونه بمون. زن اصرار محبتآمیز شوهرش رو به موندن در خونه قبول نکرد و با قایق همسرش راهی جزیره اسرارآمیز شد. با اینکه گفته بودند اون جزیره اسرارآمیز خیلی ترسناکه ولی وقتی خودش وارد اون شد به نظرش اصرار آمیز و ترسناک نیومد جزیره همون درخت‌ها و گیاه هایی رو داشت که در کوه‌های دهکده هم پیدا میشد. اما به محض اینکه به جزیره رسید خیلی تند و سری به دنبال گیاه داروی خود رو داشت میگشت اما نتونست به راحتی اون پیدا کنه. دل سرد نشد. جستجوی خودشو توی جزیره برای پیدا کردن گیاه مورد نظر خودش ادامه داد. واقعا با ایمان میتونن هر کاری رو پیش ببرند. بالاخره گیاه دارویی بسیار عجیبی دید. این گیاه رنگ عجیبی داشت. و در شکاف صخره ای رویده بود این همون گیاهی بود که می میگفتند قدرت جادویی اسرار آمیزی داره وقتی این گیاه رو دید با تعجب تمام گفت او اینجاست این باید گیاه دارویی باشه از خوشحالی فریاد کشید و با دقت گیاه دارویی رو چید در همون لحظه بود که از دور صدای فشفشی بلند شد برگ درختا شروع به خشخش کردند بعد صدای عجیب و ناخوشایندی شنید با شنیدن صدای ترسناک چند لحظه صبر کرد به اطراف خودش نگاه کرد و تعداد زیادی مار دید. مارهای زیادی بودند، بزرگ و کوچیک. به طرفش در حال خزیدن بودند و زبونشون را هم بیرون آورده بودند. یه جیغی کشید و بیهوش شد. بعد از زمان طولانی به هوش اومد. وقتی که به بدن خودش نگاه کرد، دوباره فریاد کشید او خدای من بدنم بدنم تبدیل به مار شده در حقیقت متوجه شد که بازوها و ساغاهاش از بین رفتند و بدنش به بدن مار تبدیل شده و پوشیده از پولک های بسیار وحشت چه چیز غریبی بدنش رو به مار تبدیل کرد. وای خدای من این همون چیزی بود که زن پیشگو بهم هم گفت. آیا زن خوبی نبوده که برای درمون بیماری شوهرش زندگی خودش رو به خطر انداخت؟ سعی کرد هوشیاری خودش رو به دست بیاره با خودش همهش داشت فکر میکرد که چه چیزی باعث این شد که اون تبدیل به مار بشه. تصمیم گرفت زندگی شوهرش رو نجات بده. ولو هم به قیمت تغییر شکل غیر طبیعی بدنش تمام بشه. اما اما وقتی یه بار دیگه به بدنش نگاه کرد لرزید. تازه فهمیده بود که اون به مار تبدیل شد. نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست گریه کنه. بی صدا گریه کرد. بدن مار مانند بلند خودش رو چرخوند. روز بعد ادهی از اهالی دهکده در ساحل دریا فریاد کشیدند، و دریا رو نشون میدادند نگاه کنید نگاه کنید یه ماری که داره به طرف ما شنا میکنه او خدای من عجب مار بزرگی تو دهنش هم یه مقدار علفه این مار چقدر عجیبه مردم این جملات رو با خودشون زمزمه میکردند. ترس تمام بدن اونها رو فرا گرفته بود. وقتی مار به ساحل رسید مستقیما به پشت دهکده رفت. مردم از مار ترسیده بودند اما او رو تعقیب هم میکردند. مار وارد کلبه مرد ماهیگیر بیمار شد. اما ماهیگیر گیر شب قبل در انتظار اومدن همسرش مرده بود. اون در غم از دست دادن همسرش مرده بود. چون پیشگو به دیدنش اومده بود و بهش گفت همسرش به جزایر کوههای هفتگانه رفت و هیچ کس تا حال از اونجا زنده برنگشت. صبح زود همان روز اهالی دهکده ماهیگیر رو در کوهستان دفن کرده بودند مار بعد از اون که اطراف اتاق ماهیگیر خزید در جستجوی چیزی به طرف کوه پشت دهکده رفت مار نو شوهرش رو در کوه هم پیدا نکرد به اتاقی که شوهرش در اون مرده بود برگشت بعد از اون که گیاه دارویی رو در اون اتاق گذاشت به جزایر کوههای هفتگانه برگشت اهالی دهکده در حین تماشای رفتن مار به جزایر کوههای هفتگانه با یک دیگر در مورد همسر ماهیگیر مرده صحبت می کردن. بعد از مدتی وقتی مار به جزیره شیطانی رسید جزیره زیر دونه‌های غمگین بارون به شکل همسر جوان مایگیر در اومد. مردم به هم می‌گفتند به اون جزیره نگاه کنید شکل را به خودش گرفته اونها با دیدن چنین معجزه‌ای در بارون از ترس خشکشون زد و می‌گفتند اوه خدای من ماری که چند لحظه پیش میدیدیم همسر ماهیگیر مرده بود اون برای معالجه بیماری سخت شوهرش به اون جزیره شیطانی رفته بود الانم اون به مار تبدیل شده پیشگو با گریه های غمگین تمام داستان اون نوعروز بیچاره رو برای مردم تعریف کرد بعد از این اتفاق تحصف بار اون جزیره به شکل نوعروز در اومد و هر وقت در جزیره بارون می اومد از اونجا صدای عجیب گریه به گوش می رسید سالی یه بار در سال روز وقوع اون اتفاق مصیبتبار، بار مار بزرگی از دریا می اومد تا کلبه ماهیگیر فقیر رو تماشا کنه حتی امروز هم وقتی بارون میاد اهالی دهکده به جزایر کوههای هفتگانه که در دریا کنار یکدیگر قرار دارند نگاه میکنند تا ببینند آیا کوچکترین جزیره به شکل نوآروز در میاد به همین دلیل نام این جزیره رو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 قصرهای باشکوه و مهمانی بزرگ شاهانه قصه های از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها و شاهان با اصفهای تندرو و جادوی به سرزمین های ناشناخته قصه های دیو و غول و پری، رشادت های قهرمان های ها همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی مهران دوستی